سلام و درود به همه شنوندگان خوب و دوستاشتنی کانال هزار افسان امروز با قسمت دوم قصه زیبای شاهدخت پوتنتیلا و شازد دارسیسوس در خدمت شما هستم داستان رو تا اونجا شنیدیم که شاهدختی به اسم پوتنتیلا به خاطر حسادت مادرش به زیباییش اون رو در خونه در گوشه از قطر زندانی میکنه تا شاهدخت به سن پونزده سالگی میرسه. در اون موقع شاهزادهی به اسم نارسیسوس گذرش به قصر اونا میفته و شاهدخت رو میبینه و عاشق اون میشه. در این اوزا و احوال افسونگری به اسم گرومدن هم شاهدخت رو میبینه و از اون خوشش میاد و حالا نارسیسوس و افسونگر وارد رقابت شدن به خاطر جلب توجه شاهدخت بوتینتیلا. بریم که با هم ادامه قصه رو بشنویم. روز بعد شاهزاد نارسیسوس برای دلخوشی شاهدخت از شاخه های برگدار سایبون دلفریبی می سازه و زین رو اون رو تخت های کوچیکی از سبزه و چمن و حلقه های گل قرار میده. اسم شاهدخت با شکوفه رنگارنگ در همه جا نوشته شده بود. اون برای شاهدخت مهمانی های باشکو و جمع جوری ترتیب می‌داد که در اون نوازندگان پنهانی و به زیبایی مینواختند هر وقت موسیقی متوقف می شد، بلبلی تنها با نقمه های زیبای خودش آرامش اونجا رو دلنشین تر می کرد. شاهدخت فریاد زد، آه، فیلو شیرین من، کی این ترانی جدید رو به تو یاد داده؟ شاهدخت صدای بلبل دوستاشتنی خودش رو شناخته بود. بلبل جواب داد، عشق، شاهدخت من، افسونگر از این سرگرمی که به نظرش که بار بود خیلی عصبانی شده بود. اون گفت به نظر نمیرسه که در این ناحیه به چیزی غیر از این پرندگان جیغ, جیغ و فکر کنی. این مهمانی ها بدون یک بشت طلا به چه درد میخوره؟ خوره؟ بنابراین روز بعد وقتی شاهدخت به باغ رفت در اونجا خونه تابستونی دید که از سلای ناب ساخته شده بود. همه جا مطابق میل شاهدخت آراسته شده بود. داخل ساختمون مقدار زیادی خوراکی چیده شده بود. بشقاب ها، لیوان ها، لولدار و ظروف طلایی روی میز برق می زدن. و تمام وسایل دیگه طلایی بودند. به طوری که نمیشد مدت طولانی به اونها خیره شد. افسونگر به اندازه 6 تا قول غذا میخورد اما شاهدوخ نتونست حتی لقمه توی دهن بگذاره. گرومدن قرولاند کنان گفت نوازنده و خاننده نیوردم چون میخوام خودم برات بخونم. اون با صدایی مثل ویغ ویغ جغد شروع به خوندن اشعار اپرای خودش کرد. خوشبختانه این بار خیلی تونانی نبود و همراهی قرباقه ها رو هم نداشت. بعد از این شاهزاده دوباره دست به دامن پرندگان خودش شد. وقتی اونها از سراسر کشور گرده هم اومدند، به گردن هر کدومشون چراغ بسیار ریزی با رنگهای درخشان بست. وقتی که تاریکی از راه رسید، اونها رو به سمت بوتینتیلای عزیزش راهی کرد. اون با دیدنشون از شادی و با شور و شغ دستای کوچیکش رو به هم میزد. وقتی اسمش رو با هزاران نقطه ریز روشن در دل تاریکی نوشته دید از خوشحالی پر در آورد. گرومدن با سر و صدای زیاد سندلش رو عقب زد و از جا بلند شد. اون با یک جزد خودش رو به سمت دیگه رسوند. دماغش در هوای تاریک روشن اونجا شکل مسخره‌ای پیدا کرده بود. اون گفت آه شادخت، پس آتیشبازی دوست داری؟ و شب بعد تمام فانوس های شیطان که با هوای گند و آلودی مرداب ها می از سراسر کشور گرد اومدند و در ده شروع کردند به رقصیدن. شاهدخت از پنجره اتاقش این صحنه را تماشا میکرد و تا حدی خوشش اومده بود. اما یک دفعه آتش فشانی ترسناک سر براورد و دود و آتیش به همه جا پراکنده شد و شاهدخت رو به شدت ترسوند. این مثلا سرگرمی عجیب افسونگر بود که صدای خندش مثل صدای دسته گرگ در حال نزا بود بعد همونطور که به تعداد های شیطان افزوده میشد، اونها در باغ پوتنتیلا جمع شدند و به خاطر روشناییشون درختان بلند به رقص در اومدن. بالاخره شاهدو خسته شد و دیگه تمایلی به تماشای چیز بیشتری در اون شب نشون نداد پوتنتیلا با وجود اینکه از افسونگر پیر خسته و بیزار بود با اون معدبانه رفتار میکرد افسونگر از اینکه نتونسته بود با کارهاش رضایت شاهدخت رو فراهم کنه شک کرد که شاید اون کسی دیگه رو دوست داره و خبر نداشت که این پری میلینه که اون همه مراسم رو که شاهدخت از اونها لذت میبره برپا کرده اون همه چیز رو زیر نظر گرفت و نقشه ریخ تا سر از حقیقت در بیاره پس فورا پیش شادخت رفت و گفت که برخلاف میلش مجبور اون رو ترک کنه و برای خود حافظی اومده پوتنتیلا با شنیدن این حرف به زحمت تونست شادی خودش رو پنهان کنه همین که افسونگر رفت اون از شاهزاده نارسیسوس تقاضا کرد که یک بار دیگه خودش رو مرعی کنه شاهزاده بیچاره که به خاطر رنج دوری و نگرانی خیلی لاغر شده بود از اینکه یک بار دیگه مرعی شده خیلی خیلی خوشحال بود اونها از دیدن همدیگه به وجد اومده بودن. در کنار هم نشستند و با خیال راحت خوشبش بش کردن و از هر چیزی حرف زدند. از اینکه افسونگر رو از اونجا رونده بودن خوشحال بودند. اما یک دفعه صدایی خشمناک از پشت درختان به گوش رسید. افسونگر خشمگین با چماق گنده‌ای که در دستاش به قصد ضربه زدن چنان به سمت شاهزاده حجوم برد که اگر هوشیاری پری ملینت نبود احتمالا جان به جانافرین داده بود ملینت به موقع خودش رو به اونجا رسوند و شاهزاده رو به سرعت برق ربود و با خودش به قصر برد پوتنتیلای بیچاره اصلاً نفهمی چی شده چون با دیدن ظاهر ستیزگر افسونگر نسبت به دلدارش فریادی از ترس برآورد و بیهوش به زمین افتاد وقتی به هوش اومد مطمئن بود که شاهزاده کشته شده ملینه اونجا نبود و دیگه کسی نمیتونست از اون در برابر افسونگر پیر و نفرت انگیز دفاع کنه و از بدتر شده بود به نظر میرسید که اون بدخلاق تر و عصبانی تر شده و میخواد خشم خودش رو به سر شاهدخت خالی کنه اون گفت دو شیزه بزار بگم چه این شاهزادی که زوار رفتر رو دوست داشته باشی چه نداشته باشی اصلا فرقی نمیکنه تو با من ازدواج خواهی کرد پس خودت رو آماده کن، حالا هم میرم دنبال تدارک مراسم عروسی، چون ممکنه در نبود من دست به کارهای خطرناک بزنی، فکر کنم بهتر تو رو خواب کنم. با گفتن این حرفها چوب دستش رو به سر شاهدخت به حرکت درآورد. اون تلاش زیادی کرد که بیدار بمونه، ولی به خوابی امیق فرو رفت. افسونگر که دلش میخواست راهی به قصر پادشاه پیدا کنه از قلمرو کوچیک شاهدوخ بیرون رفت و سوار به کالسکیهای بسیار بزرگ با چرخهای آهنه بزرگ و محورهایی به قطر تنه درخت بلوت اما از طلای ناب شد این کالسکه رو 48 نرگاو قوی با زحمت زیاد میکشیدند افسونگر، در جای خودش به چماق گندش تکیه زده بود و با بیخیالی یک شیر آفریقایی سبز تیره رو روی زانوش نشونده بود انگار که یک سگ. ساعت تقریبا هفت صبح بود که این کالسکی عجیب و غریب به دروازه های قصر رسید پادشاه بیدار بود و آماده میشد که به شکار بره اما ملکه تازه به بستر رفته بود و کسی جرعت نداشت بیدارش کنه اون شب رو به سرخوشی میگذروند و روز می خوابید پادشاه از اومدن مهمان ناخوانده و اینکه مجبور شده بود در قصر بمونه خیلی ناراحت و عصبانی شد اون با ادا و اتفار چکمای شکارش رو درآورد در همین موقع افسونگر در تالار قصر میچرخید و فریاد میزد پادشاه کجاست؟ بهش بگید که باگد اونو همسرش رو ببینم پادشاه که در باری پله ها بود حرفارش رو شنید و این حرکت افسونگر رو نشانه بیادبی اون دونست پس با شکارچیه هم دل و هم فکر خودش به مشورت پرداخت نصیحتهای اون رو آوزهای گوش کرد و همون موقع پایین رفت تا حرفهای افسونگر رو گوش کنه اون از دیدن کالسی افسونگر به شدت متعجب شد و خیره بهش نگاه میکرد تا اینکه افسونگر با گامی بلند به طرفش رفت و با فریاد گفت کلور ریف رفیق قدیمی دست بده منو و نمیشناسی پادشاه مبهوط جواب داد نه nah. واقعا نمیشناسم افسونگر گفت عجب منم گرومدر افسونگر اومدم کاری کنم که بخت یارت بشه بیا در جایی بشینیم و کمی گپ بزنیم افسونگر به نره دستور داد که دنبال کار خودشون برن و اونها هم در یک لحظه از نظرها ناپدید شدند و مثل گوزن سر به صحرا گذاشتند بعد با یک ذربی چماق کالسکی بسیار بزرگش رو به کوهی از طلا تبدیل کرد. اون به پادشاه گفت، اینها برای نوکرای شماست. شاید برای سلامتیم دعا کنند. ورود افسونگر به قصر همه را غافل گیر و اوزار رو آشفته کرد. این همه صدا و هیاهو ملکه رو بیدار کرد. اون زنگ رو به صدا در ورد و ندیمهاش پیش اون شتافتند. ملکه پرسید که دلیل اون همه هیاهوی غیر عادی چیه؟ اونها گفتند که تازه واردی به اینجا اومده و میخواد اون رو ببینه. بعد یکی یکی نفذ زنان با قصه ای متفاوت که نشان از شگفتی داشت ماجرا رو تعریف کردند. ملکه از بین حرف های بریده کلماتی مثل نرگاو، تلا، چماق، تنومند و شیر رو میشنید. فکر میکرد اونها همه عقلشون رو از دست دادند. در این بین پادشاه از افزونگر پرسید به چه علت افتخار دیدار اون نصیب شده و افزونگر گفت تا زمانی که ملکه هم حاضر نشه جوابی نمیده قاصد پی قاصد پیش ملکه فرستاده می شدن تا فورا خودش رو به پادشاه برسونه. اما فریولا که بی موقع بیدار شده و سر قوز افتاده بود و کچ خلق شده بود گفت که یکی از انگشتانش درد میکنه و هیچ چیز نمی تونه وادارش کنه که پیش اونها بره افسونگر با شنیدن این مطلب اصرار کرد که ملکه باید بیاد اون گفت چماغم را پیش علیا حضرت ببرید و بگید که اگر انتهای اون رو بو کنه به طرز شگفتانگیزی سر حال میشه چهار تن از قوی ترین سربازان سواری پادشاه کشان کشان چماق را با خودشون کشیدن. بعد از شنیدن سخنان افسونگر ملکه رضایت داد این روش جدید را رو آزمایش کنه همین که بوی چماق به دماغش خورد احساس کرد که کاملا دگرگون شده و نیرویی تازه در وجودش راه یافته حالا اینکه به خاطر بوی چوب بوده یا به خاطر لمس اون که بلا فاصله بارانی از جواهرات زیبا به سرش فرو بارید قضاوتش با خود شماست اما میدونیم که اون اشتیاق عجیبی برای دیدن بیگانی مرموز پیدا کرد و با عجله ردای سلطنتی را به دوش انداخت دومین تاج عالی الماس رو روی شبکلاه روی سرش قرار داد و بزرگترین باد بزنش رو جلوی بینی گرفت چون نمیخواست پوستش در معرض روشنای روز قرار بگیره و نازنازان به تالار بزرگ رفت افسونگر منتظر من تا پادشاه و ملکه به تختشون بنشینن بعد در وسط اونها برای خودش جایی باز کرد و با خیال راحت شروع به صحبت کرد اسمم گرومدنه من افسونگری بی خوشبرخورد خوش برخورد هستم. قدرتم بسیار زیاده. زیبایی و جذابیت دخترتون چنان منو شیفته خودش کرده که بدون اون زندگی برام امکان پذیر نیست. اما اون اشقه جوان خاری به نام نارسیسوس رو در سر داره. البته یک بلایی به سر اون جوان اووردم. برام مهم نیست که با ازدواجم موافق باشید یا نباشید. فقط میخوام نظرتون رو درباره دخالت یک پری به اسم ملینت بدونم چون میخوام بنا به دلایلی با اون رابطه خوبی برقرار کنم پادشاه و ملکه مونده بودند که به این خواستگاری ترسناک چه جوابی بدن بالاخره از اون وقت خواستن تا درباره این موضوع با هم مشورت کنن اونا گفتند که باید جوانب به کار رو بسنجن چون آیاشون ممکنه فکر کنن که وارثان تاج و تخت کشورشون زوجی بیلیاقت هستند افزونگر گفت فقط یک یا دو روز همین الان دنبال دخترتون میفرستم شاید بتونید وادارش کنید که تر فکر کنه اون با گفتن این حرف سوتش رو در ورد و آهنگی گوش خراش درون دمید بلافاصله شیر بزرگ که در حیات قصر زیر آفتاب چرت میزد سر و کلش پیدا شد افسونگر گفت اوریون برو فورا شاهدخت رو بیار. رفتاری ملایم داشته باش. با شنیدن این حرف اوریون با گامهای بلند دور شد و خیلی زود به انتهای دیگر باغ رسید. اون نگهبانان رو به راست و چپ پراکنده کرد و با ضربه دیوار رو فرو ریخت. شاهدخت خفته رو برداشت و پشت خودش گذاشت و برای اینکه که نگفته ردای اون رو با دندونهای خودش محکم گرفت. بعد به آرامی برگشت و در کمتر از چند دقیقه به تالار بزرگ رسید و در برابر چشمان از هدقهدرآمدهٔ پادشاه و ملکه ایستاد افسونگر چماقش رو نزدیک دماغ کوچیک و زیبای شاهدخت گرفت اون بیدار شد و از دیدن خودش در محلی دیگه و با حضور گرومدن نفرتانگیز از ترس به خودش لرزید فرگولا که از دیدن شاهدخت داشتنی ناراحت شده بود از جا بلند شد قدمی به جلو برداشت و با تظاهر به نگرانی تقاضا کرد که پوتنتیلا رو به کاشانش ببرند تا در اونجا احساس امنیت کنه چیزی که واقعا بهش احتیاج داشت در واقع اون فکر همیشگی خودش رو در سر داشت و نمیخواست دیگران شاهدخت رو ببینن. پس پارچهای به سر دوشی انداخت و اون رو به اتاق خودش برد و در رو قفل کرد در تمام این مدت شاهزاده نارسیسوس، اندوهگین و دلسرد در قصر ملینت در هوا زندانی بود. با اینکه زیبایی و شکوه دور تا دورش رو گرفته بود و اون از تمام نعمت ها بود فقط یک فکر در سر داشت و اون دیدن پوتنتیلا بود. پری میلینت که در واقع اون رو نجات داده و قول داده بود نهایت تلاش خودش رو براش بکنه به تمامی پرستوها و پروانه های زیر فرمانش دستور داد تا در خدمت شاهزاده باشند و از دستورهاش اطاعت کنند یک روز موقعی که شاهزاده با اندوه زیاد قدم میزد صدایی شنید که اون رو به خودش فرا می خوند بعد متوجه شد که اون صدای فیلومل بلبل وفاداره شاهدخته اون همه ماجراا براش تعریف کرد و گفت که چطور اون شیر شاهدخت خفته رو به قصب برد و گفت که خودش چطور بدون اینکه بدون چی کار میکنه سرگردان شد تا اینکه از پرستوها در باره که در قصر هوایی به سر میبره چیزهایی شنید و فکر کرد اون شاید خود نارسیسوس باشه. شاهزاده بیشتر از همیشه افسرده و پریشان شد و بیهوده سعی کرد که با پریدن از پشتبان به روی ابرها از قصر فرار کنه. هر شند هر بار دستگیر میشد و به آرامی به جای اول خودش برگردنده میشد. بالاخره دست از تلاش برای فرار برداشت و با صبر و حوصله منتظر برگشت پری شد. در این اسنا وقایع در دربار پادشاه کرولیف به سرعت در جریان بود. ملک مصمم بود که موجود زیبایی مثل پوتینتیلا رو هر چه زودتر از راه خودش برداره. اون پنهانی به دنبال افسونگر فرستاد و بعد از اینکه قول گرفت هرگز پادشاه و اون رو از حکومت برکنار نکنه و از قلمرو رو به پادشاهشون دور نکنه، اجازه داد شاهدخت رو برداره و به جایی دور بره تا دیگه چشمش بهش نیفته. بعد گفت که روز بعد و فقط همون یک روز ترتیب مراسم عروسی رو میده. حالا شاید بتونید اندوه پوتنتیلا رو از سرنوشت تلخ خودش تصور کنید. فریولا بهش گفت اگر جام زهر رو به شوهری ثروتمند و قدرتمند ترجیمیده، حتما اون رو براش فراهم میکنه. روز سرنوشت ساز برای پوتینتیلای غمگین از راه رسید. اون در تالاری بزرگ بین ملکه و پادشاه نشسته بود. ملکه از پشپشهایی که در ستایش از زیبای شاهدخ به گوش میرسید به شدت عصبانی بود. خیلی زود سرکله گرومدن از در روبروی تالار پیدا شد. را جمع کرد و انتهای اون رو بسته بود. جامعه چرمی کیسه مانند بزرگی پوشیده و نواری به گردنش بسته بود. رداش از سکه های به هم چسبیده نقره بود و جلیقه به رنگ قرمز به داشت. اون خودش از این قیافه‌ای که به هم زده بود خیلی سرحال و سرکیف بود. اگر چشم شاهدختی بهش می افتاد، مسلما ترجیح میداد که جام زهر رو بنوشه، اما اسیر دست چنان موجودی نشه. اون چه نباید پیش می اومد، اتفاق افتاد ملکه فریولا جام را با اشتیاق تمام به دست شاه داد اون هم فریاد زد آه محبوبم میام پیش تو و جام را به لبانش نزدیک کرد یک دفعه پنجره از تالار بزرگ با صدای زیاد باز شد و پریملینت سوار به ابر درخشان شامگاهی و در پی اون شاهزاده وارد تالار شدند تمامی حاضران با تعجب و حیرت به این صحنه نگاه می کردن. همین که چشمه پوتنتیلا به دلدارش افتاد، جام را انداخت و شادمانه به سمت شاهزاده دوید. اولین فکر افسونگر با دیدن ملینت این بود که از خودش دفاع کنه. پری به سمت نقطی کور افسونگر رفت و با چنگ انداختن در مجهاش اون رو از زمین بلند کرد. از سقف تالار بیرون برد و کتک مفصلی زد تا درس خوبی براش باشه. بعد چوب دستش رو به تنش کوبید و اون رو برای هزار سال در گویی بلورین زندانی کرد و بعد اون رو از سقف آویزان کرد. با فریادی خشمنا گفت این درس خوبی برای توه. بارها بهت یادآوری کرده بودم. بعد رو به پادشاه و ملکه کرد و از اونها خواست که مراسم عروسی رو ادامه بدن. چون همه چیز برای پیوند زناشویی یک زوج مناسب آماده است پری اونها را از حکومت محروم کرد و گفت که دیگه شایستگی اداری کشور نیستند بعد تاج تخت را به شاهزاده و شادخت سپرد اونها تمایلی به اینکار نشون نمیدادند اما چاره یم نداشتند و باید از دستور پریمرینت اطاعت میکردند البته اونها حواسشون بود که همه چیز رو برای راحتی زندگی پادشاه و ملکه فراهم کنند. شاهزاد نارسیسوس و شاهدخت پوتنتیلا سالهای سال با خوشبختی زندگی کردند. مردم کشورشون اونها رو خیلی دوست داشتند در مورد افسونگر هم باید بگم تا اونجایی که اطلاع دارم هنوز هم در گوی بلورین جا خوش کرده روز و روزگار خوش